در میکرد می بوزونت بان کرد با نام که زشت شد نکونت وان کرد میده که کنون پرده مستوری ما به دریده چونان شد که روپونت بان کرد دادم به امید روزگاری برباد نابود ز روزگار خود روزی شاد زان میترسم که روزگارم ندهد چندان که ز روزگار بستانم داد در عالم جان به هوش میباید بود، در کار جهان خموش میباید بود، تا چشم و زبان و گوش بر جا باشد، بی چشم و زبان و گوش میباید بود. در دهر هران که نیمنانی دارد، از بهره نشست آشیانی دارد، نه خادم کس بود نه مخدوم کسی، گوشاد به که خوش جهانی دارد.